پسر پادشاه و قرباقه این داستان است از نگار جعفری از کرمانشاه روزی بود و روزگاری بود پادشاهی بود که سه تا پسر داشت و میخواست یکی از اونا رو که لایقتره جانشین خودش کنه پادشاه رو به پسراش کرد و گفت هر کدوم از شما که بتونه همسر انتخاب کنه که توی ککپزی بهترین باشه و برای من کیک بپزه، اونو جانشین خودم میکنم. کنم. پسرا برای پیدا کردن همسر مناسب را افتادند. دوتا پسر بزرگتر گشتن و گشتن تا توی روستایی دوتا خواهر رو دیدن که توی آشپزی مهارت زیادی داشتند. شاهزاده ها اونا رو همسر خودشون کردن و همراهشون به قصر آوردن. پسر کچیک ترم هر چقدر گشت دختر مناسبی گیر نیاورد. روستاها رو گشت، شهرها رو گشت، ولی باز هم کسی نظرش رو جلب نکرد. همینطور که خسته و در می رفت، چشمش به گرباقه افتاد. گرباقه از اون پرسید، چی میخوای؟ پسرک گفت میخوام برای خودم همسری پیدا کنم. گرباقه گفت من همسر تو میشم. پسر خندید و به اون گفت انتخاب همسر برای من خیلی مهمه. همسرم باید بتونه کیک خوش بپزه و پدرم هم باید از اون کیکا خوشش بیاد. اون وقت من جانشین پدرم میشم. در غیر این صورت پدرم از بین دو تا برادرام جانشین خودش رو انتخاب میکنه. بعد رو به قرباغه کرد و پرسید تو که نمیتونی کیک بپذید؟ قرباغه به اون گفت الان نمیتونم بگم برو فردا بیا همینجا تا بهت بگم پسر به قصر برگشت روز بعد پیش قرباغه برگشت و دید کنارش کیک بسیار بزرگ و خوشمزهیه قرباغه کیک رو به پسر داد و گفت برو این کیک رو به پادشاه بده. اگه خوشش اومد دوباره پیش من بیاد. اگه خوشش نیومد هیچ وقت دیگه منو پیدا نمیتونی بکنی. پسر پادشاه تشکر کرد، کیک رو برداشت و به قصر برگشت. پسرای بزرگتر رو آماده کرده بودن. پسر کوچیک کیکش رو کنار اون دو تا کیک گذاشت. پادشاه کیکها رو امتحان کرد. کیک پسر بزرگ خیلی شور بود کیک اون یکی پسر هم اصلا مزه نداشت ولی وقتی که کیک پسر کوچیک رو چشید حیرت زده گفت عجب کیک خوش ای؟ حتم دارم همسر لایقی انتخاب کردی تو جانشین من میشی پسرای بزرگتر گفتن نه قبول نیست باید یه شرط دیگه بذاری پادشاه هم قبول کرد به پسرا گفت هر کدوم از همسراتون بتونه لباسی اندازه و برازنده من بدوزه شوهرش جانشین من میشه هر سه پسر از قصف بیرون رفتن پسر کوچیک پیش قرباقه رفت و از اون خواست تا یه لباسی اندازه و برازنده پادشاه بدوزه قرباقه هم قبول کرد و به اون گفت که برو و فردا بیا روز بعد پسر کوچیک پادشاه رفیش قورباغه و لباس رو گرفت و رفت سمت قصر وقتی به قصر رسید همه حاضر بودند پادشاه لباس پسر بزرگ رو پوشید اما خیلی بلند بود آسینای لباس پسر دیگه هم خیلی بلند بود اما وقتی پادشاه لباس پسر کوچیکش رو پوشید هم اندازش بود هم بسیار برازنده پادشاه تصمیم گرفت هر تا دختر رو ببینه پسر کوچیک ناراحت رفت پیش قرباقه و گفت پدرم تصمیم گرفته هر ستا عروس رو ببینه حالا چی کار کنم؟ من که نمیتونم تو رو پیش پدرم ببرم قرباقه گفت برو بهشون بگو همسرم با یه لباس سفید میاد پسر به قصر برگشت. شب رو با ناراحتی و نگرانی گذرند. صبح روز بعد برادرش رو دید که همسرشونو آوردن. پادشاه بهش گفت: "پس همسر تو کجاست؟" پسر جواب داد: "چند دقیقه دیگه با یه لباس سفید میاد." همه منتظر بودن. ناگهان در باز شد و دختر زیبا با لباسی سفید وارد قصر شد پادشاه از زیبایی اون دختر حیرت کرده بود رو به پسرش کرد و گفت پسر پادشاه و دختر زیبارو سالهای زیادی کنار هم زندگی کردند.